زاهد خلوتنشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد صوفی مجلس که دی جام و قده میشه کس باز به یک جر امه آقل و فرزانه شد شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد مقبچه ای می گذشت راه و زن دین و دل در پی آن آشنا از همه بیگانه شد آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت چهرهی خندان شم آفت پروانه شد گریه شام و سهر شکر که زایع نگشت قطره باران ما گوهر اکدانه شد نرگیت ساغی بخاند آیت افسونگری حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد منزل حافظ کنون بارگه پادشاست دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد